دوم. داستان زندگی ایوان لیچ بسیار ساده و عادی و نیز سخت جانگداز بود در سن و 45 سالگی با سمت عضویت دیوان عالی درگذشت او فرزند یکی از آن کارمندانی بود که در پترزبورگ در ادارات و وزارت های مختلف راهی را تیمی کنند و به جای می رسند که گرچه به روشنی مسلم است که به درد کارهای موجود نمی خورند. به علت سابقه خدمت طولانی و پایههایی که تحصیل کردند نمی شود عذرشان را خواست و به این سبب سمت‌های های مجازین برایشان میتراشند که هزاران روبل از شش تا هزار به جیبشان میریزد و تا پیری در این سمت‌ها ها می الیا گالاوین از همین کارمندان غیر لازم بود که ریاست یکی از همین ادارات غیرلازم را به داشت و تا پایه رایزنی مخفی رسیده بود الیای فیموویچ سه پسر داشت ایوان ایلیچ پسر دومش بود پسر اولش در خدمت دولت همان راه پدر را پیش گرفته بود گیرم در وزارتخانه دیگر و داشت به همان پایه نزدیک می شد که کارمندان به زور سابقه خدمت کار نکرده حقوق می‌گیرند. پسر سوم در زندگی نابخت یار بوده و به جایی نرسیده بود در داره اداره خدمت کرده و همه جا ناموفق بوده و زندگی خود را زایه کرده بود. و در راه آهن کار میکرد و پدر و برادرانش و خاسته زنهای آنها نه تنها میل نداشتند با او روبرو شوند بلکه هر جا که براستی مجبور نبودن حتی به یاد نمی آوردن که این کسی وجود دارد. خواهرشان با بارون گرف ازدواج کرده بود که کارمندی پترزبورگی از همان سنخ پدر زنش بود. اما ایوان ایژیچ به اصطلاح گل سرسبد خانواده بود. نه مثل برادر بزرگش خوش بود و مته بر خاش و نه مثل برادر کوچک کارش زار بود و به نومیدی کشیده بود. بلکه میانگین آنها بود. جوانی بود با استعداد و سرزنده و خوشمهزر و برازنده. با برادر کوچک خود به مدرسه حقوق رفت. برادر کوچکتر تحصیلش را به جایی نرساند کلاس پنجم بود که از مدرسه بیرونش کردند. اما ایوانیدیش تحصیلات خود را با موفقیت به پایان رساند از زمان تحصیل در مدرسه ی حقوق همانی بود که در تمام زندگی میشد یعنی مردی قابل و سرخوش و نیک نفس و اهل معاشرت اما در اجرای آنچه وظیفه خود می دقیق و سختگیر و چیزهایی را وظیفه خود می که بلند پایگان و رؤسایش وظیفه می دانستند نه در نوجوانی اهل چابلوسی بود، نه در بزرگسالی، اما از همان جوانی، همان همانقدر مجزوب بزرگان و صاحبان قدرت بود که مگس مجز مجذوب نور. رفتار آنها را اختیار میکرد کرد و بینی آنها را و با آنها طرح دوستی می ریخت. های کودکی و نوجوانی همه بر او گذشته و اثر نمایانی در او بر جا نگذاشته بودند. به کامجویی و نخوت تن داد. و در پایان تحصیل به لیبرالیسم نیز گرایید اما همیشه اندازه نگه می داشت و این اندازه را قریزش به دقت برایش معین می کرد. در مدرسه حقوق که بود کارهایی می‌کرد که پیش از آن در نظرش پلیتکاری سیاه می بود و چون به آنها تن می‌داد، از خود سخت بیزار می شد اما بعد که دید همین کارها را بلند پایگان و قوی دستان نیز می‌کنند و آنها را خطا نمی بیان آنکه عقیده خود را عوض کند و آنها را کارهای خوبی بداند زشتی آنها را از خاطر زدود و هر وقت نیست که به یادشان میافتاد از ارتکاب آنها دلتنگ نمیشد. وقتی با پایه دهم ده از مدرسه حقوق بیرون آمد و خزینه اونیفرمش را از پدرش گرفت لباسی به شارمر سفارش داد و به زنجیر ظریفی که با زینت‌آلات ریز بر سینه میزد، مدال یاور که روی آن نوشته بود مواظب عاقبت کار باش. بعد با پرنس که رئیس مدرسه بود و با مربی خود ودا کرد و در زیافتی که برای خداحافظی در رستوران دونم ترتیب داده شده بود با دوستانش غذا خورده و با چمدان نوع مدروزی که پر از لباسهای نوع زیر و رو و وسایل ریشتراشی چنین و جلال و پتوی پا گرم کن لطیفی برای سفر بود و همه را به بهترین مغازه ها سفارش داده و خریده بود راهی شهرستان شد تا مباشر معمولیت های ویژه وابسته به دفتر مخصوص استاندار به کار مشغول شود و این سمتی بود که پدرش برایش دست و پا کرده بود. ایوان ایلیچ در محل خدمت در شهرستان فوراً همان شرایط سبک بالی و خوشباشی مدرسه حقوق را برای خود فراهم کرد. کار خود را می کرد و آیندهاش را میساخت و در این حال با شایستگی خوش می گذراند. دهگاه به بخشهای اطراف به مأموریت میرفت و با بالادستان و فرودستان با متانت رفتار میکرد و هایی را که به عهده داشت و بیشتر به امور فرقههای منشعب از کیشی یا آین ارتودکس مربوط میشد با دقت عمل و درستی به انجام می رسالید و از این شیوه کار البته احساس و غرور کرد. در کار خدمت با وجود جوانی و تمایل به نشاطرانی و سبکسری بسیار خوددار و رسمی و حتی سختگیر بود. اما در مهمانی ها حق لب سرخوش و بزل پرداز و همیشه نیکی دل و مقدب بود. و در خانه رئیسش که همچون دوستی سمیمی و خودمانی به آن راه داشت جوانی مهربان و ساده دل شمرده می شد. در آن شهرستان رابطی نیز با یکی از بانوان داشت که خود را به این جوان حقوقدان خوشلباس بند کرده بود دخترک خیاتی هم بود که با او سر و سری سر داشت با افسران و آجودانهایی که به مرکز استان میآمدند نیز میگزاری میکرد و بعد از شام سری هم به خانهای در كوچهای دور میزدند گاهی از خوشخدمتی و چربزبانی برای رئیس و همسر او نیز خودداری نمیکرد اما اینها تمام به شیوهی چنان والا و ظریف و چنان با شایستگی و سنجیدگی صورت می گرفت که نمیشد اسم زشتی بر آنها گذاشت و از مقوله شور و شر جوانی شمرده میشد که به قول فرانسویان باید طی شود. اینها تمام با دستهایی پاکیزه و پیرهنهایی اتو خورده کرده میشد و با جملات فرانسوی بر زبان میآمد. و از همه مهمتر در محافل بزرگان صورتست می گرفت. و در نتیجه بلندپایگان آنها را جایز میدانستند و میپسندیدند ایوان ایلیچ به این ترتیب پنج سال خدمت کرد آن وقت بود که در دستگاه اداری تحولی صورت گرفت در نظام دادگستری نهادها و سمتهای جدیدی پدید آمد و برای آنها آدمهای جدیدی لازم بود ایوان ایلیچ یکی از این آدمها بود یک سمت بازپرسی به او پیشنهاد کردند و او آن را پذیرفت گرچه محل این سمت در استان دیگری بود و او میبایست که روابطی را که در این استان برقرار کرده بود بگذارد و در محل جدید مناسبات دیگری برقرار کند دوستانش به مشایعتش رفتند و عکس دست جمعی با او انداختند و جعبه سیگاری سیمین به یادگار به او هدیه دادند و او به محل خدمت جدید رفت ایوان ایلیچ وظایف خود را در مقام بازپس به همان سنجیدگی و شایستگی انجام میداد که زمانی که مباشر معموریت های ویژه استاندار بود و همانطور حساب کارهای اداری را از زندگی خصوصی جدا می شمرد و همانطور در همه احترام قام کرد سمت بازپسی نیز در ایوان ایلیش علاقه بیشتری برمیانگیرد و دل او را بیش از کار گذشته به خود میکشید. در سمت پیشین البته بسیار خوشایند بود. که با لباس شیک دوخت شارمر از میان ارباب رجوع و کارمندانی که با دلی تپان در انتظار بودند تا به حضور استاندار پذیرفته شوند، خرامان بگذرد و در دل آنها حسرت برانگیزد و بی آنکه منتظر شود راست به اتاق استاندار وارد شوند و با او چای بنوشد و سیگار بکشد. اما کارمندان زیادی نداشت زیر نظر مستقیم و در اختیار او باشند. جز معموران پلیس و اعضای فرقه انشابیون کسی نبود که او هرچه بگوید اطاعت کند آن هم فقط هنگامی که به معموری از میرفت داشت که با این اشخاص معدبانه و دوستانه رفتار کند طوری که در دل بگویند که این جوان بزرگوار گرچه قدرت دارد که آنها را مثل یک مگس له کند با سادگی و دوستی با آنها رفتار میکند در گذشته از این گونه زیر دستان بسیار کم داشت. اما حالا در مقام بازپورس احساس می که همه را بی استثناء. حتی آدمهایی بسیار بانوفوز و از خود راضی را در مشت خود دارد و کافی است که چند کلمه روی کاغذ مارکداری بنویسد و آن آدم بانوفوز از خود رازی را همچون متهم یا در مقام شاهد نزد او بیاورند و آن آدم بانفوذ اگر او نخواهد اجازه نشستن به او بدهد جل او سرپا می ایسد و به سوالاتش جواب میدهد البته ایوان اینش هرگز از این قدرت استفاده نمیکرده. و به عکس می تا درشتی آن را با مردم داری نرم کند اما همان آگاهی به داشتن این قدرت و توانایی نرم کردن خشونت آن در نظرش بزرگترین مزیت و جاذبه سمت جدید بود در این سمت به ویژه در کار بازپرسی آموخت که چطور ملاحظات فرعی را که با موضوع بازپرسی و منصب او مربوط نبود کنار بگذارد و محتوای پیشیده ترین پرونده را طوری ساده سازد که مسئله به صورت عینی و آزاد از عقیده شخص او روی کاغذ آید و همه تشریفات لازم رعایت کردد. سمتی که او آن گمارده شده بود تازه بود و او یکی از اولین کسانی بود که آین دادرسی را که روح آن در قانون 1864 نهفته بود شک دادند و راه انداختند. ایوان لیچ با آمدن به محل جدید و اشغال سمت بازپرسی آشنایان تازهی بدست آورد و روابط تازهی برقرار کرد و به زندگی خود سر و صورت تازهی بخشید و در مناسباتش با اطرافیان شیوه تازهی پیش گرفت. از مقامات استان محترمانه دوری گزید و برج ستنین شخصیتها را از قضا تو و کلاو و نجبای ثروتمند ساکن آن شهر برای معاشرت انتخاب کرد. به اظهارات خود رنگ نارضایی ملایمی از دولت بخشید که خاص لیبرال های معتدل و شهروندان روشن فکر بود در این حال در سمت جدید بیان که در خوشبوشی خود تغییری بدهد دیگر چانی خود را نتراشید و ریش خود را آزاد گذاشت تا هر قدر و به هر شکلی که میخواهد بلند شود. زندگی ایوان ایلیش در این شهر بسیار مصبوب بود جمع برگزیده او که به استاندار و کارهایش به چشم انتقاد مینگریستند یکدست یک دست و هماهنگ بودند و معاشرت با آنها خوشایند بود. حقوقش بیشتر شده بود و به سلک ویست بازان پیوست و همین لطف و لذت بسیار به زندگیش وارد کرد. خاصان که در بازی ورق مهارت داشت و با خوشروی و نشاط در آن شرکت میجست و بارکبین و تیزندیش و اغلب برنده بود. ایوان ایلیچ بعد از دو سال خدمت در این شهر با همسر آینده خود آشنا شد. پراسکوویا فیودورونا میخل، جذابترین و هوشمندانه‌ترین و درخشانترین دختر جمعی بود که ایوان ایلیچ در آن رفت آمد می‌کرد. از جمله تفریحات و سرگرمی‌هایی که ایوان ایلیچ به قصد رفع خستگی از کار قضاوتی برای خود ترتیب می داد، یکی هم برقراری روابط دوستانه و بگو بخند با پراسکوویا فیودورونا بود. ایوانلیچ از همان وقتی که اوتدار های ویژه بود هر وقت که فرصتی دست میداد در مجالس رقص شرکت می‌جست اما اکنون در مقام پاسپورس جز در موارد استثنایی نمی‌رقصید آن هم برای آنکه نشان دهد که گرچه در نظام اداری جدید خدمت می کند و به پایه پنجم اداری رسیده است در زمینه رقص همچنان سرآمد دیگران است به این ترتیب بود که گاهی در پایان شبنشینی ها با پراسکوی و فیدروفنا می رخزید و بیشتر با همین رخص ها بود که احاق او را تصرف کرد دختر به او دلباخت ایوانیلیچ تصمیم روشن و مشخصی به ازدواج نداشت اما وقتی دختر را دلباخته ی خیش دید این مسئله را در پیش خیش یافت که حالا خودمانی چه عیب دارد؟ چرا زن نگیرم؟ دوشیزه پلاسکوویا یا فیودورونا از خانوادی محترم و نجیب زاده بود. زشت نبود و ثروتکی هم داشت. البته ایوان ایلیچ میتوانست زن بهتری بگیرد اما این هم بعد نبود. ایوان خود حقوقش را داشت و امیدوار بود که درآمد جهیز زنش نیز مبلغی در همین حدود نصیبش کند. به علاوه کسوکارهای زنش آبرومند بودند و خود او نیز دختری شیرین و زیبا و شایسته بود. اگر بگوییم که ایوان ایلیش از سر اشق و همدلی و همفکری با زنش ازدواج کرد به همان اندازه نادرست است که خیال کنیم فقط به خاطر تعیید و پسند محافلی به این وصلت تندات که در آنها رفت آمد می کرد ایوان ایلیش به هر دو جانب توجه داشت هم به خاطر دل خود ازدواج کرد و هم به سبب اینکه متشخصان و بلند این کار را شایسته می شمردند. خلاص اینکه ایوان ایلیچ زن گرفت ماجرای دامادی و ابتدای دوران زناشویی با ناز و نوازش های شیرین آن و میان مبل و ظروف تازه و خلاص اسباب و اساس نوت ها بارداری پراسکوپیافی و بسیار به خوشی گذشت به طوری که ایوان ایلیچ رفته رفته معتقد می شد که زناشویی نه تنها راحتی و خوشایندی و نشاط زندگی را به هم نمی زند. و خاصه با آبرومندی و برازندگی زندگی در چشم بلند پایگان و متشخصان که به نظر ایوان الیچ کیفیت ناگزیر زندگی است ناسازگار نیست بلکه این کیفیات را دوچندان می کند. اما از همان اولین ماه بارداری زنش کیفیت تازه و بی سابقه و ناخوشایندی در زندگیشان پیدا شد که توان فرسا بود و با شایستگی منافات داشت و او به هیچ روی انتظارش نداشت و گریزی نیز از آن نبود زنش به گمان او بی هیچ علتی و چنان که با خود می گفت از سر حوث و برای لذت خود ناگهان شروع کرد شیرینی و صفا و شایستگی زندگی را به هم زدن به هیچ بهانهی به او بدگمان می شد از او انتظار داشت که دورش بگردد و از او دلبری کند ناسازگار شده بود و بر سر هر چیز به او پرخاش می کرد روایی به را ابتدا ایوان اللیش امیدوار بود با همان برخورد راحت و شایسته با زندگی که در گذشته مشکلاتش را به یاریان حل کرده بود از این تنگنا نجات یابد کوشید که بد های زنش را نادیده بگیرد و به همان شیوه گذشته به سبوشباری و خوشباشی زندگی کند دوستان را به خانه خود دعوت می کرد و بسات بازی میگستررد یا خود به باشگاه یا به خانه دوستان می رفت. اما زنش یک بار چنان دهان گشود و طوفانی از دشنامهای زشت بر سر او توفید و بعد هم هر بار که شوهرش خواسته او را محترم نمیدانست با همین شدت به او پرخاش میکرد که ایوان ایلیچ ترسید. پیدا بود که زنش تصمیم دارد که تا وقتی شوهرش دست از سرکشی بر ندارد یعنی در خانه ننشیند و مانند او روز خود را با ملال به شام نرساند و همین رفتار ادامه داد. ایوان ایلیچ دریافت که زندگی زناشویی تا با این زن همیشه موجب شیرینی و صفای زندگی نیست بلکه به عکس اغلب این کیفیات را از زندگی زایل کند و به این سبب او ناگزیر است که خود را در برابر این زوال حفظ کند و به فکر افتاد که حفاظی برای خیش بیاود کار اداری تنها چیزی بود که در پراسکوویا فیودورونا احترام القا کرد و ایوانی لیچ شروع کرد با هربه کار اداری و تکالیفی که از آن ناشی میشد با زنش بجنگد و استقلال خود را از دست دستانداز او تأمین کند با تولد طفل و تلاش های زنش برای شیر دادن و نامرادی های گوناگون در این عرصه و بیماری های واقعی یا خیالی طفل و مادرش که پرستاری و قمخاری ایوان ایریچ را ایجاب می کرد و ایوان ایریچ از این مسائل هیچ نمی فهمید لزوم تأمین محیطی آزاد از های خارباده برای او آجل تر از پیش گردید هر قدر زنش زود خشم تر و پرتوقوتر میشد ایوان ایوانیلیچ کانون زندگی خود را به سوی کار اداری سوق میداد پیوسته به آن علاقمندتر و در مقام جویی از گذشته میشد ایوان لیچ به زودی نزدیک به یک سال بعد از ازدواج دریافت که زندگی زناشویی گرچه با آسایش نسبی همراه است در حقیقت مسئله ی بقرنج و توالفرسایی است به طوری که انسان برای اینکه بتواند تکلیف خود را ادا کند یعنی بتواند زندگی آبرومندانه و در برابر جامعه اززت بخشی داشته باشد باید در قبال آن چنان که در قبال کار اداری به رفتار سنجیده و خاصی برای خود بپردازد این کار را کرد و در عرصه زندگی زناشویی رفتاری سنجیده پیش گرفت از زندگی زناشویی انتظاری جز آن نداشت که برایش آسایش مادی پدید آورد یعنی غذای لذیذ و مزایای کدبارویی با تدبیر و رختخواب گرم یعنی آنچه میشد از آن انتظار داشت فراهم سازد و از همه مهمتر حفظ ظاهری برازنده چنان که جامعه بزرگان معینش میکنند. از اینکه بگذریم وقت خوش میجست و لذت که اگر در خانه حاصل می شکر شکرگزار بود اما هرگاه خانه را جایگاه زدیت و پرخاش پرخاشجویی میدید بیدرنگ در امنیت کار اداری نامی می‌برد واقعاً خوشی را که میجست در آن میافت. در دادگستری ایوان ایلیش را در مقام صاحب منصب پرکار قدر میشناختند، چنانکه ظرف سه سال به مقام نمایندگی استان ارتقا یافت. وظایف جدید و اهمیت آنها، و اختیار جلب هر کسی که بخواهد به دادگاه یا بازداشت او و سخنرانی‌هایی که در حضور جمعیت حاضر در دادگاه ایراد میکرد و موفقیتی که در این کار نصیبش میشد. همه موجب دلبستگی هرچه بیشتر او بکار می گردید. با آمدن فرزندان دیگر زنش پیوسته پرخاش جوتر و زود خشمتر می شد. اما مناسبات سنجیدهی که ایوان ایلیچ در برابر زندگی خانوادگی خود پرداخته بود همچون زرهی او را از پرخاش زنش حفظ می کرد. بعد از هفت سال خدمت با سمت دادستانی به استان دیگری منتقل شد. ایوان ایلیچ خانوادش را به محل جدید بود. پولشان کفاف ریخت و پاششان را نمیداد و زنش از محل جدید خوشش نمیآمد. حقوق ایوان ایلیش افزایش یافته بود اما هزینه زندگی در این استان بیشتر بود. از این گذشته دو تا از فرزندانشان مردند و به این سبب زندگی خانوادگی برای ایوان ایلیش ناگوارتر از پیش شد. پراسکوویا فیادورونا بابت هر یک از نامرادی های پیش آمده در شهر جدید شوهرش را ملابت میکرد موضوع بیشتر گفتگوهای های آنها خاصه در خصوص تربیت بچه ها به مسائلی میکشید که خاطره بگومگوهای گذشته را زنده میکرد به طوری که هر لحظه خطر اشتعال آتش ستیز دیگری در پیش بود فقط به ندرت مدتی گرمی عشق چنانکه گاهی میان زنان و شوهران پیش میآید آنها را به هم نزدیک میکرد اما عمر این هم همنفسیها بسیار کوتاه بود اینها جزایر کوچکی بودند که آن دو اندکی بر آنها آرام میجستند تا دوباره خود را در دریای دشمنی پنهان که در بیگانگیشان از یک دیگر نمایان میشد باز افکنند این بیگانگی اگر ایوان ایلیش آن را کیفیتی ناروا میشمرد ممکن بود او را دلتنگ کند اما او اکنون این حال را نه تنها عادی بلکه هدف خود در زندگی زناشویی می دانست. هدفش در زندگی این بود که خود را هرچه بیشتر از این نابسامانی آزاد سازد و آنها را به صورت عوارزی عادی و بی آزار و با آبرومندی سازگار بشمارد. و راه رسیدن به این هدف آن بود که وقت خود را هرچه کمتر در میان خانواده بگذراند و هر وقت ناگزیر شود که در خانه بماند، امنیت خود را با حضور سالسی تأمین کند اما مهم آن بود که ایوان ایلیش کاری داشت که می توانست در امنیت آن پناه جوید. تمام معنای زندگی برای او در کار اداریش خلاصه میشد. این کار او را در خود برقه میساخت. آگاهی به قدرت خود و توانایی تباه کردن هر کسی که بخواهد. حتی حیبت ظاهریش انگامی که به تالار دادگاه وارد، یا با کارمندانش روبرو میشد و موفقیتش در نظر بالادستان و نفوذش در زیردستان و از همه مهمتر زبردستیش در هدایت کار دادرسی که خود آن را حس میکرد اینها همه اسباب خرسندی بودند و همراه با لذتی که از مصاحبت با دوستان و از زیافتها و مجالس قمار میبرد زندگیش را پر میکرد. کرد چنان که زندگیش به طور کلی طوری پیش میرفت رفت که او خود گمان میکرد باید پیش برود یعنی با لذت و عزت او به این ترتیب هفت سال دیگر به زندگی ادامه داد دختر بزرگش 16 ساله شده بود یک تفل دیگرشان از دنیا رفت و برای موضوع کشمکش کش جز پسری برایشان نمود که به دبیرستان میرفت ایوان ایلیچ میخواست او را به مدرسه حقوق بفرستد و پلاسکوف یا از سره لجاج میل داشت که پسرش به رشته علمی وارد شود. دخترشان در خانه درس میخواند و پیشفتش خوب بود. پسرشان هم در زمین یه تحصیلی بد نبود.